بسم الله الرحمن الرحیم کلاس استاد وعیزی خدا به الله الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> و الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد و الطاهرين. روشن شناسی اجتهاد که مبحثی که تو این ساعت بنده فراهم خدمت شما بزرگان سفران گرامی باشم بحث روش شناسی کاربندی به این معنا که ما یک فرآیندی رو در اجتهاد تعیین کنیم یعنی ما از یک مجهول فکری از یک سوال فکری، یک مسئله فکری، یک مسیر رو باید طی بکنیم برای اینکه به نتیجه به مطلوبمون برسیم. اون حکم شرعی رو در این روندی که طی میشه، بهش روش شناسی، روش شناسی اجرا آن چیزی که البته، از آن نظر هست، این است که ما یک فرایندی رو، یک نگاهی رو از بالا به عملیات استمرار به فرایند حل یک مسئله فریده، توصیه‌هایی رو برای حل یک مسئله فریده رایندی. به این نه که شما چگونه و با چه مراهل و روشهایی میتوانید یک مسئله فکرگی را حل کنید حالا در ادامه توضیحاتی که تر می میشه من الان فایل پاورپوینتی که توی کانال هم ارسال شد اون رو داشته باشید خیلی از این چیزها حل میشه لیکن الان هم بنابرای تصویر آماده میشه حالا این شادا که تصویرم آماده میشه این مطالب رو تصویری شما هم میخواهید اگر به یک مثال بزنیم برای روشتناسیشتا مثالش میشه یک مسیریا شما یک مبدا و مقصدی رو در برای مسیریا تعیین میکنید اینی که از کجا باید برید، کی باید بپیچید، کجای طرفه از کجا بون اول کجا باید برید، بعد کجا باید برید. اینو مسیریاب شما روش شناسی اشتهاد می‌خواد چنین کاری بکنه؟ روش شناسی کاروردی اشتهاد می‌خواد چنین کاری بکنه؟ روش شناسی که میخواد به شما توصیه بکنه یک هنجاری رو به شما ارائه بده بعنوان یک معیار که آقا شما که می‌خوای حل مسئله فکری بکنی باید از این مسیرها عبور کنید اولین گامت اینه دوم اینه و در گام دوم باید از این روش ها استفاده کنید تا بتونید مرحله رو درست پشت سر بگذارید این میشه نوشه ناسیه کاروردی هنجاری و توصیهی معیار برای اشتماع اینکه میگیم و هنجاری یعنی این به شما توصیه میکنه که آقا این کار رو بکن این رو نکن اینکه میگیم میلیار برای این که روش شناسی شخص خاصی مدنظر نظر نیست بلکه میخوایم به این روش شناسی که صحیحه معیار درست برسی که از حالا از این علم تعبیر روش شناسی ازش می روش شناسی استنباط بعضن باید تفاوتی بهش الگوریتم اجتهاد میگن مهندسی استنباط میگن فرایند استنباط میگن امثال این تعابیر و الفاظی که به کار میبرند همش اشاره به همین مطلب داره که ما نگاه از بالا بکنیم به کیفیت سیر یک مجتهه یک مهمه برای عبور از یک مجبور فردی و رسیدن به مجبور به جواب مصدیم اصل فوائد این روش شناسی رو ای این جلسه خواهیم گفت توضیحاتش رو فرد با فرق و اینها و و خود اون مراحل و روش ها رو اگر اون میگوید باشه ظاهرته برنامه فردا ساعت دو خدمت دوستان خواهیم میسیم الان فیلم بگیم که جا این روش شناسی فایده اش چیه تعریفش رو گفتیم از تعریفش خودش فایده مهمش روشن میشه به اولی فایده روش شناسی که ما در حل مسئله فعلی نیستیم. اینجوری نیست که آقا ندونی یه مسئله رو می‌ذارن جلوی ما ندونی بعد چیکار بکنم. قشنگ مشخصه. روش شناسی اشتباه به شما میگه آقا مسئله رو دیدی اولین کار کارو بکن. خیلی روشن برای ما مسیر رو روشن. برای ما بازه ذهن مثلا به شما میگه اگر مسئله شما اینه الگنا و هوامون املا اولین مرحله شما مسئله شناسی. شما باید اصلا بفهمید مسئله چی. برای مسئله شناسی شما باید موضوع شناسی کنید، محمول شناسی کنید و بعد خود مسئله، رابطه موضوع و محمول رو شناسایی کنید. اگر بخوید موضوع رو شناسایی کنید، راهش اینه، مراحلش اینه. این نهم تا مرحله، این ده مرحله رو باید تک کنید. قشنگ مسیر حرکت شما خیلی واضب در ارائه میشه. متاسفانه اون چیزی که ما به شکل متدابر در درس های سطح و درس خارج های حال حاضر داریم اینه که این فرایند رو این مراهب و این روش رو ما یاد نمیده یعنی چی؟ یعنی استاد میاد میگه که آقا مسئله این است دلیلش این است و من توضیح نمیده که خب شما دلیل از کجا به دسته اگر شما نمیگفتی دلیلش این هست من بعد از کجا این دلیل رو پیدا میکردم. اینا رو به شما نمید. به سیره تمسک نمی‌کنه، ولی به شما نمیگه من چرا به سیره تمسک نکردم. به مقاصد شریعت تمسک میکنه نی نمیگه من چجوری این مقصد شریعت اصلا به ذریعه رسید چرا به من نمیرسه. روش این که شما این ادله رو جمع کنید به شما نمی رقش نفت هم خیلی وقتا نمیگه مثلا میاد میگه آقا یه روایت اطلاق داره خب چرا اطلاع نداره؟ داره؟ اگه من خودم با یه روایت مشابهه دیگه برخورد کردم چجوری بفهمم من اطلاق داره یا نداره؟ یا میاد مثلا فرض کنید یه روایت میگه آقا یه روایت معتبر است گاهی که اصلا فقط به همین اعتبارش اکتفاق می کنم معتبر است تو. چرا معتبره؟ یام یان دیگه نبا حسن بن علی که در این سند هست حسن بن حسن بن علی بن فرزانه و این سغه اما برنامه توضیح نمیده شما از کجا باید این حسن بن علی از علی بن فصان رو رو به روش های کار رو به ما نمیگه مراحل هم دقیق و مرتب ارائه نمیشه یعنی استاد نمیاد بگی که آقا مسئله من اینه خب من که مرحله اول هستم مرحله اول مسئله شناسیه این یک یادتون باشه باید این مرحله رو برید با این در دو این مرحله هیچ کدو مزیدان رو نمیده خیلی وقتا اصلا مرحله مسئله شناسی به خاطر گذاشت بزرش کنار گذاشته میشه مرحله جمع اقوال مدره میشه باز استاد نمیگه من چیکار کردم و همینطور من را برمین ندیجهش وقتی دقیق به ما نمیگه استاد که من چی کار کردم چه مراهلی رو تقیی کردم چه روشهایی استفاده کردم این آموزش خیلی دیر بازده فر من خودم باید سالها مثلا درس خارج برم تا بفهمم آقا چرا استاد فرانجاب و فتلا براد فرانجاب و فتلا براد کجاها از این روش استفاده کرد کجاها از اون روش استفاده نکرد سال ها باید خدمت یه استادی برسم تا مثلا دو بار مرحله مسئله شناسی رو درست بر ما اجرا بکنه کامل اجرا بکنه من قشنگ بفهمم آقا مسئله شناسی باید چی کار کرد و امثال این مثال ها بسیار زیاد اگر تدریس روش کار فرقی روش حل مسئله فرقی به شکل آموزشی به این نه باشه که استاد دقیقا بیا بگه بیا, بیا آقا طبق آموزه های روش شناسی من اولی مسئله رو بردارم سراغ مسئله شناسیش اول نگاه کنید من تو مرحله موضوع شناسی هستم تو مرحله موضوع شناسی باید این پنج راه رو برم من برای تک کردن مرحله اول از این روش استفاده کردم برای تیک کردن اگه اینا رو به ما بگه ما اینها رو خیلی زود یا دونیم خیلی روند آموزش تغییر می کنیم مسئله دیگه ای مطرح شد دیگه من میدونم استاد من من استاد من گفته برای این مسئله تو موضوع شناسیش این پنج مرحله رو بعد بری مسئله جدید جلوی من بیو بارش خیلی واجو بلادم چیکار بکنم ندارم که آقا من میخوام مسئله رو حل بکنم باید چه انجام بدم مخصوصا این فایده تو مسئله مستحدث خودشون نشون بده حالا مسئله قناه حرام هست یا نه؟ علمان سالیان سال روشتهای کردن، عدلش رو جمع کردن، رونده بحثش تقریبا مشخصه، بحث لغتی قناهش مطرح شده اما اگه مسئله مستهدزه بزن به این جلوی طلبه؟ بگن آقا، شما حق تعلیف درسته در اسلام یا درست نیست؟ اصلا طلبه ده سال 20 سال درس خارج رفته اصلا نمیدونه باید چگاه کنه آقا تقیه ترید من باید چیکار کنم واقعا نمیدونه بعد از این همه سال درس خارج چرا؟ چون این روند اون نقشه عملیات استعمال به شرای نشده فقط اون موال فقه و اصول به شرای شده نه مسیریابی نه نقشه نه نگاه به خود عملیات استعمال اما اگر شما روش شناسی رو داشته باشی، خب بیگه آقا حق و تعلیم مرحله اول آقا مسئله شناسی موزی شناسی حق و من برای حق و باید چیز کنم دیگه آقا برو معنی دوقتیشو بیده معنی استدالیشو بیده لقاظمشو بررسی کن انابین فرقیی که بر حق و تعلیم صدق کنه رو بررسی کن مثلا پرس کنی مال برش صدق می کنی یا نه باشن این مسیر رو برما بازه می کنم فایده دیگه‌ای ای که این روشناسی بر ما داریم جلوی بسیاری از خطاها ها و اشتباهات ها تو می من خودم برچی افتاریم تو وادی بحثه روشناسی ما می رفتیم درست خارج کاربای خدمت یک از استاتیل بزرگ با ما باید بحث و ارائه می دادیم ما آماده می کردیم می خدمت استاد بحثه که شروع می کردیم استاد که فولان مرحله رو انجام دادی؟ گفتم نه یادم نمیاد. یا میگم فقط برای این مرحله از فولان روش استفاده کردی؟ گفتم نه من اصلا بلد نبودم از این روش باید استفاده کردم. کم کم اینها رو من یاد داشترم این مراحل این روشا رو، ولی که یادم نره. بعد مجموعه ای شد که حالا تحت یه ای چاپ شد. وقتی این رو من آگاه باشم بهش جله چشمن باشه روش ها جله من باشه ما اینا رو فراموش نمیکنیم این خطاها و اشتباه ها پیش نمیاد. آقا ما درس قریشی که از بزرگان می رفتیم می شناسید اومدیم خدمتشون یه روایت کندن مثلا فرض کنید گفتن آقا این قاسم بن محمد مثلا توی این سنت این شخص قاسم ابن محمد جوهریه و این چیز نیست ویساقت نداره برای باید زعیم ما رخیم بررسی کردیم دیدیم اصلا سنت قاسم ابن محمد نیست مثلا حسن ابن محمد اشتباه از کجا ناشی شده؟ استاد گرانقد روایت رو در تهذیب دیده بود نسخه تحذیب غلط بود نسخه چاپی تحذیب غلط بود نسخه صحی با دلایل حسن محمد خب این اشتباه از کجا ناشی شده؟ ما تو مراحل روش شناسی بررسی سند یه مرحله داریم که آقا شما باید برید اول سند صحیح رو پیدا بکنیم چجوری من سند صحیح رو پیدا کنم؟ شما باید برید همه این نسخه تحضیب رو ببینید اگر رواهد تو کافی و فقی اومده بررسی کنید و سائل و باقی نگاه بکنید شروع تحضیب رو نگاه بکنید کتب فقی که این رواهد تو ذکر کردن نگاه بکنید این جزه یکی از مراحله اگر که این مراحله تو ذهب نباشه مثل این استاد بزرگوار خب غفلت میشه بدون توجه به این مرحله بین نسخه و اتفاق میکنه اعتماد می کنه و نتیجش این میشه که میگن آقا به محمد مثلا این روایت حجت نداره اما اگر این مرحله بهش توجه بشه روش هاش درست اعمال بشه ما رفتیم اینو بررسی کردیم گفتیم رفتیم بعد خدمت استاد گفتم که آقا این سنت درست نیست حسنه به محمد روایت حجت استاد اصلا نگاه کردم فردا شما گفتن که بله درست بود این روایت حجت این روایت کی حجت نه که بسیاری از اختلافاتی که بین علما وجود داره در کارهای فقهی از همین جا نشی میشه اشتباه در اشتباه در یافتن ادله ما یه مسئله بود هر چی دلیل براش علما آورده بودن باطل بود. خودشون هم میگفتن آقا ادله باطله و تمسک نمی‌کردن تنها مرغوب محقق داماد به سیره تمسک کرده بود و زیره دلیل درستی بود به جواب مسئله رو میداد خب چرا بقیه به جواب صحیح نرسیده بودن به خاطر اینکه این توی روند روش شناسی تمام مراحل تی نشده به شکل صحیح مرحله یافتن سیره و نفرو بررسی سیره رو تیه نکرده بودن نتیجه این شده بود که آقا اینا به این دلیل نرسیدن فقط یه بزرگوار دیگه رسید و امثال این خطاها و گفلتها و اشتباهات برای کسی که روش شناسی و اعمال نکنه در تحبیقش در فرایت نستموتش الا ما شالله رو خودیده آقا دستشون رو نکنید شما حالا می نگاه بکنی تفاوت‌هایی هایی که کرمات علمان داره در نرده هایی که به هم دیگه داره. خاله درست بیدارن عزیزان نه نشد شما برید دقت کنید اشکالاتی که به هم دیگه میگیرن همه شما حالا از این به بعد برید بهقتر بکنید یک عامی به یک عاالمی دیگه اشتبالال کرده. مثلا میگه آقا شما در استظار اشتباه کردید چرا مثلا به قرینه مقابله دقت نکردید این اشتال اشتبالال روش شناسانه هست. یعنی شما در روند استظهارتون یک مرحله دارید؟ استخصای قرائل و توجه به تمام قرائل نقام وقتی این مرحله درست نی نشه خب به قرینه مقابل درقت نمیشه اشتباه میشه یه اشتباه هایی که اشتباه می به یکی دیگه میگه آقا شما اینجا قرینه مهدت سیاق تمسک نکنید یا تمسکتون به قرینه مهدت سیاق اشتباه و امثال این اشتباهات تو بحثای جمع و عرفی و توی وحثای تعارض و اینا بسیار پیش میتونید این از کایده سب کایده چهارو اطلاع از مسائل و علوم و مرد نیاز برای اشتحان شما وقتی که شناسی را تعیین بکنید بدانید از چه مسیرهایی باید طی کنید تا مسئله بر شما حل بشه خب معلوم متوجه میشه چه علومی نیاز دارید مثلا فرض نفهم شما تو محصه استثهار از عدلده میگی یکی از قراره مهم استثهار از عدلده فهم دقیق فضای صدور ربایتو خب فرض فضای صدور ربایتو چه علمی متقف داری؟ علم تاریخ ما علم تاریخ رو نیاز داریم برای رو اشتباه چه مسائلی از علم تاریخ برای ما مهمه که باید توی اون بهش بپردازیم تا تو استظاهار دوچار اجتبانش اگر این روش شناسی کامل و دلیق باشه که یک مجموعه کاملی برای آموزش تحریف کرد آقا شما میخوای این مسیر رو طی بکنی باید این مقدار از مسائل تاریخ رو بدی این مقدار از مسائل ترجان رو بدونی این مقدار از مسائل مثلا تفسیر و علوم و رو بدونی تک تک اینها خودش رو نشونی اما اگر ما این روشیناسی نداشته باشیم خب میریم تو دل کار و گاهی وقتا اصلا دقت نمی کنیم که آقا به فضای صدور باید توجه کرد برای استثاره از دقیق یا آگاهی بر کار برد مسائل دیگر علوم در ارتباط. خیلی وقتها میگن آقا این مسئله اصولی به چه درد می این مسئله رجالی به چه درد می این مسئله علوم قرانی به چه درد می این اگر این روش شناسی رو خوب آموزش بدید، طرف دقیقاً میدونه از کدوم مسئله اصولی باید کجا استفاده کنه. مثلا فرض کنید آقا خبر شبه حجت است. دیگه شاید بعضی میگن مهمترین ترین اصولی اینه دیگه. ما کجا باید از این مسئله استفاده بکنیم؟ اگر روایتی ما خواستیم بهش تمسطک بکنیم اولا ثانیت رفع شناسی به من میگه اگه یک روایتی بود باید اول بری بررسی کنیم وصوق به صدور داره یا نداره اگر بوسوق به صدور هست اطمینا به صدور هست اصلا نیازی به خبر و جداست نداریم فرض فرمایید مثلا میگم بعضی میگن آقا این مستفیز هست دیگه وصوق به صدور داره. یا مثلا شهرت عملی داره وصول به صدور داره دیگه نیاز به بررسی گزار خبر شبهه و جدس نیست جایگاه خبر شبهه و جدس واس کجاست شما اگر روایت وصول به صدور نداشت ثانیاً یه قید دیگه هم نداشت غیر دوم چیه درویشان است که شما میگن که گای علما قائلا اگر یک روایتی قدما این روایت رو صحیح و حجت نیاز به بررسی سندی نداره مثلا میگن اگر مرموم صدوب این روایت رو به شکل قطعی به محصوم علیه سلام نستدار گفت قال از ساده و علیه سلام سلامتن بیدن آمد خلالا محمد آمد اینجا دیگه اصلا نیاد خبر سفه حجدست شما ندارید اعتماد شهادت یا خبر قدما بر سه خبر کافیه برای حجیت باشید پس خبر سفه کجا رو درد من میخوره ؟ اگر خبر خاصی تمثب کنیم و به صدور نبود طب نظر برخی، شهادت یا خبر به سه هده شد قدما نرسیده بود اون موقع به ساعت رابییان م میشه آقا خبر صدا حجد از بررسی آقا این مثل و خبر سده هست یا نیست یا بحث های طبیعه آقا طبیعه مال جمع عفی یا مال مرحله تاره کاربرد گزاره ها و مسه دقیق تو فرنده استبا به ما نشونیم فایده بعدی که بحث روش شناسی اشتباه داره آگاهی از کاستی های علم مرتبط با داره یعنی چی یعنی شما وقتی روش شناسی اشتباه بشه به شکل صحیح داشته باشی در مرحله عمل می بینید که آقا گاهی وقتا تو این مرحله اصول موجود ناقصه اصول موجود جواب نمی‌کنی مثلا هم فرض روش شناسی مهیار به شما میگه که شما میخوایی به یک آیه تمسک کنید یکی از قرائن مهمش روایت های تفسیریه باید روایت تفسیری رو ببینید بدون نگاه به روایت تفسیری کم از هایی باید سعیی نیست خب سوال ما چند روایت تفسیری داریم چند داریم؟ تو اصول به ما گفتن خودمونش هوچه ت، خودمونش هوچه تی زلاسوان باهی که نمیدونید دونید، خودمونش هوچه ت، خودمونش هوچه تی اشاره تو حجت هر خودمونش خودمون، یک رواج تفسیری از میاد معنا میکنه، یک رواج تفسیری از تعبیه میکنه، یک رواج تفسیری مستاق میگه، یک رواج تفسیری اصلا خلاف ظاهر هم میکنه، چیزی که اصلا ظاهر رواج نیست. همه اینا اند دقیقه اصلا عدل خبر سرقه یا فقط برکشون حجتن میشه به معتول دونستشون. وقتی من تو رب شناسی اجتحاد میبینم این مرحله رو لازم دارم. اما این مرحله تو اصول نیمده میفهمم آقا اصول باید اصناح بشه. کمبودهای اصول باید. همونطور که کمبودهای آموزش ما باید روشن میشه. ما گفتیم مثلا من میفهمم به علم تاریخ نیاز دارم در حالی که مثلا آموزش به ندرسی تو علم تاریخ نیست ازون هم اسلام میشه به این نه فایده بعدی کسی که شناسی اجتهاد رو بلد باشه مراهب رو بفهمه کلمات رو بسیار دقیق میفهم. یعنی دقیق میفهمه این عالم این جمله رو در در مهام استظهار در مقام جنبオルفی یا در مقام حل تعارضه کدوم مرحله است خیلی وقتا وقتی ما این مراحل از هم تفکیک نکردیم اصلا این سنسورهای اون مخاطبین طلبه معادله پوزیشن نمی‌دونن تحریف نمیشه توجه نمیکنه که آقا این جمعه رو اصلا برای چی گفت ما به یه حده ای بوده که آقا روشناسی بود درس داده بودیم روشناسی رو فدمت اینا درس دادیم بعد میامدیم کتاب که نگاه می کردیم تو فهمیم که الان این مؤلف در چه مقامیت می بود تو کدوم مرحل هست تو رونده اشتابه یه اومده موقع اجماع آقا این اجماع رو که گفته مال مرحله جمع اقوال یا مرحله دلیله اینو فرق میکنه مرحله رو خوب کسی که روش شناسی مصندت باشه این فهم بهتری از کنام معلف داره دقیق میفهمه که آقا این کدوم مرحله است از چه روشی استفاده کرد برای اینکه این مرحله رو کرد؟ چرا؟ چون این روش ها رو تو روش شناسی خونده دقیق میکنه اومد این از کدوم روش استفاده کرد و این کم کم روش شناسی ما رو هم تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی یک دفعه برمی کنیم. مثلا به کنام سات جواهر میبینیم از یک روشی استفاده کرد که تا حالا ما تو روش شناسی دقت نکرده بودیم. نخونده بودیم جز روش ها اصلا حسابش نکرده بودیم نه گرده بودیمش. حالا این؟ روشهایی که حالا جلسه بعد مراحل رویشایی که خدمتتون ارائه شد اینا کلمات علما برداشت شده هیچ حس عقلی هم نداره ممکنه یک روشی باش که ما بهش دقت نکردیم و کم کم با خوندن بیشتر عبارات علما بهش برسیم به شرطی که این ذهنیت باشه این دقت باشه این توجه به روش توجه به مراحل توجه به روش ها در قلم مؤلف باشه فایده بعدی آشنایی به مکاتب فرقیه تفاوت مکاتبه فرقی چه جوی شکل می گیره؟ گاهی وقتا تفاوت بر اساس مقانی حسونگیه آقا مرحوم آقای خویی مثلا اجماع شعرت و حجت نمی آقای حجتی می دونه. این مکتب رو متفاوت میکنه به خاطر تفاوت مقانی گاهی وقت تفاوت مبانی بر اساس تفاوت های روش است یک مرحله رو یک نفر اعمال میکنه یک نفر اعمال نمیکنه در فهم از روایات آقای برو جردی میفرماید که آقا نظرات عامه بسیار مهمه روایت های آمه بسیار مهمه اصلا روایت های ما ناظره به روایت های است این مرحله را شما مخواید استظهار کنید از یک بباید باید همه رواهات های آنبر را داشته باشید خونده باشید نظرات آنبر دیده باشید تا بتونید استزهار کنید خب این شاخصه این مکتبیش این روش تحلیل روش شناسی که از کار آی برژهدی انجام میشه باعث میشه شما مکتب صحیح من. مثلا آی برژهدی رو درمیر مکتب صحیح و بدون توجه به روی شناسی مکتب به شکل صحیح قابل فهم نیست قابل درک و قابل استعمال است. این از خواعد روی شناسی البته خیلی روشن واضح و ضروریست که اینی که ما بشینیم روش شناسی بخونیم مراهب یاد بگیریم این روش به ما بگن این برای مشتهد شدن ای نداره به هیچ وجه، به هیچ وجه کافی نیست این که گفتم میشونم ما روش شناسی خونیم شیش ماه مشتهد میشیم، در دو ساله مشتهد میشین اینا اصلا و عبدا سهد نداره خود من چند سال دارم این کار میکنم به جاری هم جامعی رسید من نرسید یقین یعنی بدونید آقا این سالها تمرین میخواد سالها تمرین میخواد ما نیاییم میگیم مثلا تو مرهد استثمار شما باید همه قرائن رو بیست کنید و همه قرائن رو مد نظر قرار بدید اما برای استثمار باید ده سال بیست سال این رو هی پیش این استاد خبره هی تنبین کنی هی بری جلو هی بیای عقبه استاد اشکال کنه هی تو جواب هی تا این ملکه بشه درست بتونه ایمان کنی قرینه ای مقابله رو قرینه این رهدتی سیاه رو و همسایی این تماسی با حکوم رو روش شناسی اشتحاد به نظر صحیح در آموزش بسیار بسیار موثره بازدهی رو بسیار بالا می‌بره، آموزش رو تکنیل می‌کنه. اما به این معنی نیست که ما دیگه خیلی زود مشتهد بشیم نه اتفاقا توی مراهل روش شناسی خواهیم به خدمت دوستان ولکه از مراهلش طرف بخواد تیعی بکنه باید 10 سال فکر کنده بشه ده سال باید روایت کنده بشه تا بتونه این مرحله رو درست تیعی بکنه این روش رو درست اعمال بکنه با توجه به این حرفایی که خدمت عزیزان سنین تمایز این روششناسی مئیار هنجاری با فقر روشنش روششناسی نگاه به عملیات استمارد همون نقشه هست از بالا مسیر رو به شما نشونه فقر رفتن تو دل کاره یعنی شما یه مسئله رو جلو این مراهل رو تیمی کنید این روشه رو تیمی کنید مثلا اینکه سوار ماشین میشید از مبدا به مقصد میخواید دارید اینه که سوار ماشین میشید رانندگی میبارید این میشه فر اون نقشه کلی چه روش شناسی و روش شناسی یک علم عالی و ابزاریه باید که نیست ما اصلا روش شناسی برای اینکه مجهولمون معلوم بشون نگاه عالی باید ده. این حیر باشه نه نگاه اصول. تمایزه آه. تمایزش با اصول فقر هم روشن شد اصول فنگ به ما گزاره میده که این گزاره ها بعدا به درد میخوره توی فراینده استنباد به درد من بفاره. اصول فقر به عملیات استنباد از بالا به عنوان نفشه نگاه نمی کنه به شما میگه اول چیکار کار کن چیکار چی کن نه اصول فقر به شما گذاره میده و خبری سر حجت است. روش شناسی میگه آها این گزاره در این مرحله کار برده شماست یه بحث مختصری هم در مورد پیشینه روش شناسی هم بکنید خب از اولی که فقر شکل گرفته خب به شکل طبیعی روش شناسی هم بوده دیگه چون وقتی فقه بوده طرف میومده از یک مراهلی عبور میکره یک روش هایی و اعمال میکرده تا به مقصد میرسیده اصل این مراحل و روش ها در زمین فقه اصلا با فقه به وجود اومن اما اینکه نگاه نگاه ای نگاه کلان نگهی به خود عملیات استنبات باشه حالا ادعا شده اولی نفر مثلا مرموم محقق کرکیه تو عباراتشون یک نگاه اینجوری داشتن کم و بیش در کلمات برخی از علمای دیگه نه به شکل جامع که از ابتدا تا انتها برخی از ریز روش ها اومده مثلا تو کلمات برخی روش استزهار فقط ذکر شد تو کلمات برخی روش بررسی سند فقط ذکر شده این نگاه های به خود عملیات استنباط چنین سابقه ای داره اما بعد از انقلاب در سالهای معاصر در حقیقی بند. در منز در یه میشه بود. مقداری به این مبحث توجه شده مقاله ها و کتاب خوبی در این زمینه هست از بهترین متنهایی که میشه نام برد. یک نوشته ی الگوریتم اشتهاد آقای واسطی درستون فیلمن حجیت استنبات درس آیه عبدالکرین فزدالله که قلنه آزر محمد حسن حکیم یه مقدمه ای داره خود این آیه محمد حسن حکیم توی این کتاب که مقدمه قابل استفادهیه و منهجیت الاسطنبات آقای شبهی ای. این متنها متنهای خوبیه متنهای شبیه به این هم هست یک جزوهی هم ما تنظیم کردیم به نام روش شناسی کاربوردی ها که پاورپونتش که ورژن بهترش هست و توی کانال عزیزان گذاشتن و خدمتون ارائه میشه نکته ای که در اینجا میخوایم ارز بکنید خیلط پیشنهادی که ارائه میشه در مراحل روش شناسی پیشنهادینه ابتدا بحثه مسئله شنازی باید انجام بشه جمع احوال ثمره نضار جمع ادله تعارض ادله اصول عملیه و جمع و نتیجه دیو. این به شکل کلی هر هر استنبادی باید این مراحل رو طی ریز این مرحله که مثلا ما برای مسله شناسی باید چه کار کنیم، چه رو بشایی به کار ببریم اینها رو پیش آقا جلسه بنت بخل بندون ارسان کنیم فقط نموان نکته آخر برای آموزش و شناسی کاربردی و توصیهای منیگار به نظر میدیسه سه مرحله آموزش نیست مرحله اول آموزش آموزش مباحث تئوری و نظری ربشناسیه که این کتابایی که خدمتون راید دادیم بحثی که جلسه بعد خدمتون خواهی بشکن اولی نگاه تئوری و نظری باید ربشناسی اشتهاد من یارد داشت مرحله دوم تحلیل روشمند طون یعنی باید ما آموزش دبینیم که چجوری میشه یک متن فلی رو به روشمند با آموزههای روششناسی فهمید درک کرد بیشتر بفهم خود این یک ای که اینجا آورده این مؤلفی که دیبی که اینجا آورده برای کدوم مرحله است برای کدوم روشه اینجا از چه مراحل و چه روشهایی استفاده شده این آموزش نیاز داره کار نیاز داره خیلی بودن از گردی به شکل تئوری روش شناسی خواندن رو اما تو تحلیل روشمندمون تو ها تا این قبوت هم حاصل نشه یعنی ما تا نتونیم کنام مولمه ها رو در اساس روش نصیب نمیتونید نمیتونیم روش هاشون رو استنباط کنیم نمیتونیم یاد بگیریم روش ها رو از چه همزه از مرموها. این مرحله دو که خب اینم خودش حالا تب تحلیلی که ما داریم مرحله اول این آموزش تقوری حدود 20 تا 30 ساعت زمان نیاز داره آموزش تحلیل متون هم حدود 20 تا 30 ساعت آموزش نیاز داره و مرحله سپن و مرحله نهایی حل مسئله فکری بر حساس ربشتناسی اشتهاده یعنی چی؟ یعنی شما کار فقری می کنید یک مسئله بذارید جبه رو باید این حد اما برای اینکه این حل بشه شما باید بر اساس مراحل و روش شناسی قدم به قدم بیاد جلو. یعنی آقا مثلا جلسه اول یا یعنی آقا این مسئله باید مسئله شناسی بشه به ترتیبی که روش شناسی به شما توصیه کرده ابتدا موضوع شناسی یک دو سه اینا باید تیبیشه که مراحل روش شناسی اشتحال در دل یک مسئله فقری به شکل کامل و جامعه تمرین شده باشه کار عملی شده باشه یعنی ما اول رو شده گرفتیم میتونیم با تونه علما هم روشمند تمرین کنیم اما حالا این روش رو باید در به یک مسئله فقری تمرین کرد کار کرد رفت و برگشت با ازدار تا دا این روش رو من برای ملکه بشه که اینم زمان زیاد میبره ما مثلا حد عقل 120 جلسه این مرحله سوم زمان میبره که اگر یه کسی در شرایط عادی این سه مرحله رو بزرون میشه که آقا یک آموزش جامعی در مورد روش شناسی داشته و ان در آموزشش بسیار مفید و مؤثر دوستان و بولیم. ای، ای ای رو در یه مقداری بحث سریعتر را که اگر در پایان جلسه سوالی هست از،, از استفاده راست بگم پروژه که الان که ما پیش تا دوری این هفتگامه این اختلاف نظرها گاهی وقتها ناشی از این است که مراهب رو میارن تو مرحله اصلی یعنی مثلا اونه که میگه 20 مرحله داره غیر از این هفته یه سری مراهبی که ما جز زیر های این هفته ها رو بردیم اون میاره جز مراهب اصلی قرار میده گاهی وقتا اختلاف از این جهته و نهان سر جمع شما باید با تحلیل خودتون بالاخره به این نتیجه برسید که کدوم مئیار برای کار و بس منطقی تر نزید این یه کار عملی خود ما رو میترده بله. بله نظرها مختلفه باید بگیریم کدوم نظر از نظر مئیار و سعی ترم میشه سوال فهمیدن که چند مدل روش شناسی بین علما هست و بین این روش ها کدام روش جامع و مانه بین روش های دیگر هست واقعیتش اینه که شما نمیتونید یک روشی رو پیدا بکنید این دیگه آخرشه دیگه هیچ نقصی نداره دقت کنید نگاه به روش شناسی به شکل مجزای از فکر تقریبا توسط علمای ما انجام نشده به این شکل جامع و مانع نگاه نشده یعنی شیخ انصاری نیامده کتاب روش شناسی اش را ننوسی معلوم اخونی کنه نكره معلوم آمان کار کنه نكره معلوم وونی نکرده و برای این که شما به یک روش شناسی میار برسید روش شناسی صحیح برسید باید تمام روش های این اسادی این بزرگواران رو ببینید نکات مثبت خوبش رو جدا بکنید واقعی وقتا یک نکته مصفتی تو کلام آقای خویی هست شما اگه بگردید لاغلای کتاب جوارا بینا می کنید. اگر هم پیدا نکردید وقتی می بینید این رو روش استفاده کرده مثلا مرموم آقای درسته این به عنوان روش توی روش رسیم میار شما قرار میگیره و مورد توجه قرار بر... کلن اعرض بکنم آقا تو روشناسی ملیار تقریبا با تطبایی که من کردم میشه با بالای 90 درصدش مشترکه بین اولما یعنی همه قبول دارن بالای 90 درصد مراهل و روشان رو همه قبول دارن باید این کار انجام بشه حالا گاهی وقتا انجام ندادن یا نیاز ندیدن یا غفلت شده چون خود این عالم یه جا دیگه توی مسئله دیگه این مرحله رو انجام داده این رو انجام داده برای همین ما ادهامون تو این جزوهی که نوشیم که بالای نوست درصد اون چیزی که جمع کردیم از کلمات علمانست حالا چند درسته هم به زین خودمون رسیده ازامن. جواب این سوالاتو دادیم به سلامان فرد بفرمیم آیا روش شناسی اشتهاد بررسی روش ها به صورت استدلالی صورت میگیرد یعنی آیا هدف این است که یکی از این روش ها انتخاب بشه من سوال تحت استدلال بکنم در حقیقت تو روش شناسی ما با استدلال تحقیق میکنیم که برای حل مسئله به چه مراحلی نیاز داریم و هر مرحله رو با چه روشهایی هایی می توانیم کنیم بله به این شکل استدلال داره حالا یا استدلال داره یا بدیهیه اشار نداره ولی میگم هدف اینه که ما بفهمیم چه مراحل مراحلی رو پیش رو داریم و هر مرحله رو از چه روش هایی میتونیم تیب کنیم چه روش هایی برای تیه این مرحله چه روش های درسته برای تیه این مرحله فهمدن که آقا روش شناسی اجتهاد رو به این که شما میگید کجا آموزش میدم؟ بیجا آموزش میدن. ما در این تلاش می‌کنیم که قانع کنیم مدیران رو مسئولین رو که چنین چیزی ضرورت داره در حوزه و باید آموزش داده بشه. و من از همینجا هم تشکر می‌کنم از مسئولین این موسسه که این دغدغه رو داشتن، این جلسات روش‌شناسی اشتها رو تشویق دادن که ان شاءالله این زمینه‌ای بشه برای اینکه حوزه باقا هم به فکر بیفته. برای اینکه این کار انجام شه. با توجه به اختلاف مکاتب آیا برچه اصاستاً مبانی میال بودن یک روش را تعیین میکنن؟ هر روشی باید استدلال رو داشته باشید یعنی ما باید با استدلال قبول بکنیم که آقا این روش برای تعلیم مرحله درست میانن مثلاً فرض بفرمید برای استزهان معلوم های مروجهدی میخواند آقا روایات ما به روایات و نظرات اهل سنته پس برای استزاح شما باید به روایات و آراء اهل سنت دقت توجه داشته باشید. این اگه مقدمه آقای اوجدی رو بپذیرید که روایات ما ناظر و حاشیه‌ای بر روایات و نظرات اهل سنت این روش رو قبول می‌کنه. اگه اون مقدمه رو نپذیرید یه مقداری این متفاوته. یه مقدار زی سوالاتون خیلی مرادشون رو متوجه نمی‌شم روش شناسی اجتهاد برای رسیدن به اجتهاد مفید است یا برای رسیدن به شیبه مشتهدین به حکم شرعی ما شیبه مشتهدین به حکم شرعی رو برای چی میخوایم؟ اون رو هم برای این میخواییم که به اشتهاد صحیح برسیم دیگه یعنی من میخوایم شیبه مثلا شکل خمزاری یاد بگیرم که خودم اشتهاد بگنم و تو شیبه استفاده کنم به شکل صحیح اشتهادم درست بشه پس همه اینها هدفش این است که ما در روند و فبریند استفاده و اشتهادمون روند صحیح و درستی رو تقیق کنیم بیان استاد این گونه است که ما فقط روش علما رو پیدا می کنیم اتخاذ روش و شخصی چه می شود؟ ممکن است دو فقی از لحاظ مبانی فقی متفاوت باشن از کردیم ما استفاده می کنیم از مراحلی که علما گفتن و روش هایی که گفتن برای تنظیم روش شناسی زنی و البته فکر خودمون هم می‌ذاریم عرض مثلا تو این جزبه بالای 90 درصد از کلمات علماست یه درصدی هم با فکر و تعمال خودمون زریمه شده هیچ جا ندیدی کسی چنین کاری بکنه اما بر اساس فکر و استعدال خودم میگیم آقا این مرحله اینجا لازمه این روش اینجا لازمه مفیده اینها ها شخصی و روش های شخصی هم درش موثره اما این که بگیم آقا نه من میخوام یه رویششناسی بگم با همه فرق بکنه قطعا که این رویششناسی مگه میشه علما همه رویشا و همه مرادی که گفتن غلط بوده تا حالا 1400 سال گذشته فرق همه مراده رویشایی که گفتن غلط بودی که باز اون باید از ها و مراحل که این همه سال تجربه شده استفاده کرد البته فکر خودمون رو هم زمین بکنیم من چرا فرصت نه نداره خب این هم سوال آخر آمد. این سوال خوبیه این روشناسی اشتهاد حل مسئله خیلی زمان بره و چگونه با این روش این دوان رساله نوشت خدمتتون رو ارز نکنم که افضل خوب فهمیدی. که برای یک هر مسئله یک تحقیق جامعه در یک مسئله ریز به ریز این مراقل بشه که خیلی مفصل با حسله باید حل بشه آقا من خود بنده سال قبل یک مسئله رو با دوستان داشتیم حل میگردیم یک سال یک مسئله حل کردیم تمرین هم میخواستیم بکنیم این روش ها رو دیگه یک سال یک مسئله حل کردیم خو آقا چهارزار تا نمتونم په هزار تا مسئله داره رساله ترم باید چهارزار سال اوم باید تا رساله بنویسه جواب حالا این بعدا بعدن اگر فصل خودتون از زود هست کنیم الان آنلاین بخش میشه آره خباید من دیشتر ادیار نجته اول این که الان ما در مهم رساله نویسی نیستیم من یک محققم میخوام به حجت شهری توی این مسئله برسم و درم میگم آقا شما اگه تک تک این مراحل و ها رو به شکل دقیق تلم نکنید نمیدونید آخرش میگید من حجت بشتم برای این موقعی حکم خدا از شوی بردار نیست علکی و خدمت اه... یکی از مراجازهای زنجانی نه خیلی آقا نظر شما در مورد پلان آلم کیه اون آلم شما میشناسید اون آلم رو هم شما میشناسید من اسم نمیارم. بسیار آلم توامت و در اشتها و قوبت و قوش اینا هیچ شکل شمای نبود ایشون فهموندن که خیلی باهوشه بایین از سرگوه در فتحه بدن سود فتحه نبود اگه شما میخواهید این حجت خداست، حکم خدا اینه من حجت دادن، باید حجت رو بهش رسیده باشی و در این میگیم آقا اگه این مراحل با حوصله و دقت انجام شما به حجت نمیرسی. نمیتونی مطمئن بشی که آقا من, من درست کار کردم. <متحن> کاری که باید بیه سند بشه، کاری که باید بیه دلالت بشه، توی جمع اونتی بشه، توی توارث بشه. این نکره دو کنم که برای سال نوشتن لازم نیست یک نفر همه کار رو بکنه. شاید ما در نهایت به این نزجه برسیم آقا یک مجموعه یک مجموعه گردن کلو کار مقدمات اشتهاد رو بشهد به کامل تحقیقات تتبعات همه اینا رو انجام بده ما حسنشو بیاره خدمت اون مرجع عالی اون گروه یا شخصی که میخواد تصمیم بگیره اگر همه این مراحل برای ها به شکل دقیق و صحیح انجام شده باشه دیگه اون جنبندی نهایی اون گیری نهایی دیگه خیلی بعد نخواهد بود خب از سر صحب و همه دوستان و روزو تشکر تشکل و آخر درمان علم حمد با که که فردی بود ما روی شناسی که در طراز فقه نظام ساز باشه اون, اون چی؟ اونو واد کرد ما این یعنی در وشوندسی واد آخرش می‌رسیم به یعنی دستگاه جوری. ما دستگاهی که نیاز داشتیم که برسیم وان دستگاهی با این وشی واین فراینده درایل کم بکن که اونجا برسیم اونو دنبالش. بعد این که پن. عزیزان جزء سروروندی رو باید پی بکنی تا شما یک روش پیش داشته باشید برای مرحله شويه دودها بالغ اضافه میشه الان ما شما ست یه نظام ساز از یه نظام ساز مجموعه ای از سوال هاست که باید حل بشه سوال هایی که البته نظام دارن همون معتعارفی که برای فقه نظام فعلا ما توی مرحله مرحلهیم که حالا این سوال هایی که برای فقه نظام حسبیر کردیم این سوال ها رو چجوری جواب شده؟ این فعلا اون چیزی که الان داره ارائه میشید شما،, شما میگه خیلی تفاوتی نداره؟ نه این توی, توی مرحله حل مسعده نه تفاوتی مرحله شکل گیری ها و نظام ها مختلفه شما میگه شما که آقا ما برای این که بون... فقه نظام ساز سوزبرسون فکر تا حدی اکسیلیش نشه رسیدو. ما یه دوره همین مسیر رو باید طی کنیم یعنی از مسائل شناسی اینم جمع عتیده اینم اخلاق فقه نظام هم فقه نظام هم مجموعه مسائل دیگه مجموعه گزاره‌های نظاممند حول محور واحد مگه نیست همین گزاره‌ها من میگم که این خورد دیدن و این لجزوه در مسائل ها هست نمیگم خورد ببینی تو این مرحله الان ما صحبت می کنیم یک سوالی دیگه مطرح میشه که آقا من اگه بخوام فقه نظام داشته باشم این گزاره ها و مسائلم باید چه چیزهایی باشه چجوری از این فقه نظام مسائل و گزاره ها رو در بیارم تولید کنم اون یه داستان دیگه دیگه یه پردازش دیگه ما باید روی این آموز که جای دست شما در نکنچکه واصل چرا انجام شده؟ چو فاستبول بزنی کردی نمیدونی چون بازگشته بازگذری شده اینم خدمتتون بود شما ما همین رو خواستم ببنده بدیم شماراتو حالا چون بنده همین رو در واقع همینو... خواستم بگم هست مشترکی باشه حتی می‌خواستم پیگیری کنم که جلسات حضوری کارگاه و اینها اگه در طول سال دارین شرکت کنیم شما هم هستید یا تعلق هست برای سال بعد هنوز برنامه اینجوری نداریم فعلا. برای تهران چطوره؟ تهران بر... یه... اونی. اونی. ۲نی. ۲نی. ۲نی. به طریق و خدا نیست من. هرگز توی ها یه چرا 911 352 42 77 این 20 مرحله اول که 20 ساعت روشناسی باشه این سوتش موجوده اون دو مرحله دیگه انجام شده اما سوتش موجود نیست بود مرحله دو بامو سهبون مرحله اول درسل امام حسین بود آنیا، مرحله, مرحله امام حسین بود، یه دوره هم مرحله امام حسین حضرته اون مرحله دو بامو سهبون بیشتر نیاز دارم که حضوری مثلا رفت و برگشتیم مرحله، درست الله صلاح بده انجام شده اما صوتش موجود نیست نه می اون سال بعد رفت و برگشت سرعت بگیره شاید فل به ده آدم یه چیزی به ذهنش بیاد بعد ببینیم چی میشه فعلا که برنامه ما نیست اگه مثلا پیام بدیم تو ایتام حضرت علی شاید مثلا بدن مشخص بشه باشه ان شاء الله اصل میشه نش بدیم بله بله ولی این که خمودت بیشتر نبود درسته؟ اکثرا هم شده. اصلا. خمودت بیشتر نبود درسته؟ این کلام بزرگانه. این همهش اتفاق نظر دارن. نه نه نه. مثلا این رأیشون ما پیدا کردیم از کتاب کلام شیخ انصاری. اینو از کلام امام نه پیدا کردیم. اینو از کلام های خوبی پیدا کردیم. من که همهشون همه, همه, همه گفته. همه با. گفته باشن آ. ولی مثلا من کتاب سلات شیخ انصاری رو ندیدم. ممکنه اینه که الان از کلامهای خوبی پیدا کردم تو فلان مسئله شیخ گفته باشه نمیتونم بگم نگویده مثلا بعضی بگم های روش های روش تیگه روش داره خیلی کمه مثلا ارز کردیم توی اقای برو جلدی مثلا توی استزاهال یه آقا باید به کلمات آراء آراء و روایت اهل سنت خیلی به حامیده توی استزاهال این یک یک موارد اینجوری وجود داره. پس توی کلیتش تأثیری نمی‌کنه. کانال که اسوت آموزش نداره شما خود اینت ادریس کرده باشی. چرا؟ یک کانال توئیتا هست اه... یادداشت‌های طلبگی اسمش. الان بالا میشه. اجازه سیستم اجازه نمی‌دم انگلیسی بزنید یا فارسی بزنید نمی‌تونید بیاید اینجا.